هست اندر صورت هر قصه ای خرد بینان را معنی حسه ای ویسو رامین قسمت هفتم در شش بخش از مسندوی ویس و رامین، اثر دلنگیز فخر الدین اسعد گرگانی، سخنسرای نامی قرن پنجم هجری، صاحب دلان را رهاوردی بسجان فضا آوردی. سخن به دانجا رسید که رامین، بر اثر اندرسهای دلاویز بهگوی که نیکمردی فرزانه بود، و نیز به سبب آن همه ملامت و خاری که از عشق پرملال نصیبش گشته بود، از شهریار مرزبانی گرگان و تبرستان گرفت تا از ویس دور گردد در آن دیار گرفتار عشق پریرویی شد و با او پیمان همسری ها و نامهای به سوی ویس گسیل داشت که دیگر امید از او بردارد و دل از مهر او برکند ویس از بی محبوب سخت آزردگشت و با پیامهای بسیار رامین را نکوهش کرد و از عشق ناتمام و نافرجامش برحذر داشت. رامین که نخوست ویس را پاسخهای درشت میفرستاد، سرانجام از آن بیمهری و جفا پشیمان گشت و بران شد که از همسرش گل دوری گزیند و دیگر بار نزد دلدار جاودانه بازگردد. پس از روزگاری بستراز سرانجام رامین به مرو بازگشت و یکسر به دیدار ویس شتافت اما ویس با آنکه جانش در آتش حجران میسوخت چون از رامین آزار و اندوه فراوان بر دل داشت در روزن قصر ظاهر گشت و خاموش و خشمگین دیده به رامین دوخت پس آنگه ویس همچون ماه روشن نشست آزرده بر سوراخ روزن ز روزن روی رامین دید چون مهر شکفته شد به جانش در گل مهر ولیکن سبر کرد و دل فرو داشت به ننمودان تباهی کندرو داشت چو رامین دید با نورا آزار؟ ز لب بارند زهرالود گفتار هزاران گونه لابه کرد و پوزش ز جان پرنهی بز درد و سوزش بدو گفت ای بهار مهربانان به چهره آفتاب دلستانان گله صد و آزاد سوسن خداوند منو کام دل من چرا چندین به خون من شتابی چرا رویت همی از من بتابی منم رامین که شاه بیدلانم مهر تو بگیتی داستانم تو ایویسه که ماه نیکوانی به چشم و زولف شاه جاودانی همانم من که تو دیدی همانم همان شایسته مهربانم همانم من که بودم تو نه چرا بر من نمایی دلگرانی بکشتم عشق در باغ جوانی به جان خیش کردم باغبانی کنون آمد زمستان جدایی به ابر و باد بیوفایی اگر کردم جفا و زشتکاری، تو با من کن وفا و یاری و منم بنده، تو ای زیبا خداوند، زبیزاری منه بر پای من بند، منم مهمانت ماه دو هفته، به دو هفته دو ماه راه رفته، به مهمانان همی خوبی پسندند نزینسان در میان برف بندند منظر کوشک به سخنان پر از لابه رامین که در میان برف ایستاده حدیث از سوز دل گفت گوش فرامی داد و در پایان رامین را گفت که او هرگز شاه موبد را رها نخواهد کرد زیرا موبد پیوسته یک دل است و در دوستی صادق اما رامین ده دل است و در عشق ناستوار و ناموافق جوابش داد ویس ماه پیکر جوابی همچو زهرا لود خنجر برو راما امید از مرو بردار مرا و مرو را نابوده پندار چو بشکستی وفا و عهد و سوگند چه باید این فسون و رشته و بند مرا بفریفتی یک ره به گفتار کنون بفریفتن نتوان دگر بار برو نیرنگ هم با گل همیساز وفا و مهر هم با او همی باز اگر چه هوشیاری و سخندان نییهم من نیز ناهشیار و نادان تو را دیدم بسی و آزمودم فسونت نیز بسیاری شنودم دلم بگرفت از این افسون شنیدن فسون جاودان بسیار دیدن نخواهم جستن از موبد رهایی نبا او کرد خواهم بیوفایی در این گیتی به من شایسته خود اوست که با آهوی من دارد مرا دوست روز دوستی را خار گیرد روزی بر سر من یار گیرد همی ترسم که آید در شبستان گلش را رفته بیند از گلستان مرا جوید نبیند خفته بر جای به کار من دگر ره بد کند رای شود آگه از این کار نمونه و از این بفسرد مهر باشگونه نخواهم کوبی بیازارد دگر بار که پس با او به جان باشد مرا کار بس است آن بیم و آن سختی که دیدم و از او صد ره امید از جان بریدم سخن چندان که گویم سر نیاید تو را از این شاخ برگ و بر نیاید جوانی بر سر مهرت نهادم دو گیتی را به نام بد بدادم از این درک آمدی نمید برگرد به بیهوده مکوب این آهن سرد شبت فرخنده باد و روز فررخ همیشه یار تو گلنام و گلرخ چوی را زمانی سرزنش کرد به نادیدنش دل را خوشمنش کرد ز روزن بازگشت و روی بنهفت نه بارش داد و نه دیگر سخن گفت به كویندر بماند آزاد رامین به کام دشمنان بیکام و غمگین همین عالید کرد کردگارش که از بخت سیاه و گه زیارش همیشه چشم رامین اشک ریزان هوا بر جان او کافور بیزان رخ آزاد رامین هست گلزار بود سرما به برگ کار. به بگفت اینو دگر ره شد به روزن ز روزن تیغ زد خورشید روشن برو راما تو نیز از مرد برگرد پزشکی جوی با او یاد کندرد مجو از من دگر ره مهربانی که ناید باز از پیران جوانی دل رامین ز گفتارش بپیشید همان در دل جوابش را بسیجید اگر من گشتم از مهرت گنه کار نیم چندین ملامت را سزاوار اگر بشکستم در مهر پیمان بجز پوزش نمودن نیست درمان منان در برف و بارانی ایستاده تو چشم مردمی برهم نهاده نگارینا مجو از من جدایی همه چیزی همی جو جز رهایی سمن برویس گفت ای بی رام نداری از خردمندی به نام شو یاد ز گونه جفایت نماند در دلم بوی وفایت نبس بود آنکه دیگر یار کردی مرازی دوست و دشمن خار کردی نبس بود آنکه چون نام نوشتی سخن با خون من در هم سرشتی. منم آن نوشی کفته باق صدرنگ که تو بر من بگفتی آن همه ننگ منم آن گلشن شهوار نیکو که در چشم تو بودم یک سراهو تو کردی بیوفائی ما نکردیم تو خوردی زینها رو ما نخوردیم دیگر باره جوابش داد رامین بدو گفت ای بهار بربر و چین برفتم تا نبینم خشم و نازد ببردم مهر مهرس پیش بازد دلم در مهر آن بوتروی بستم همی گفتم ز مهر ویس رستم بسی کردم نهان و آشکارا به نرمی با دل مسکین مدارا ندیدم در مدارا هیچ سودی که دل هر ساعتی زاری نمودی ندل دل را بود در تن هیچ آرام نقم را بود نیزن در دل انجام <تصفيق> خون بمان نگور هر چه خوئی تو من We turn گریان بر لب بام لب بام از رخش گشته و شیفام نشد مسکین دلش بر رام خوشنود که نقش از سنگ خارا نسترد زود اگرچه دلش بر رامین همی سوخت زرش که رفته کینگ دل همی توخت به گفت ای فریبند سخنگوی درف به میدان سخنگوی همیگویم گویم کرا روی تو دیدم وگر دیدم چرا مهرت گزیدم نباشم زین سپس با تو هم نباشد آب و آتش را به هم ساز آنگاه که شکفه دلدادگان و حدیث آرزو و اندوهشان از حد گذشت ویس با خشم بسیار از روزن قصر بازگشت و روی از یار دلازار بنهفت چو ویس داد یک سر پاسخ رام به مهرندر نشد سنگین دلش را ز روزن بازگشت و روی بنهفت نگهبانان و دربانان شا گفت مخست بیدم شب و بیدار باشید به در همه هوشیار باشید کجا امشب شبی بس سهمناک است جهان را از دمه بیم هلاک است زباد تند و از هر رای باران همی تازند پنداری سواران رامین را به گوش آمد ز جانان سخنگفتار او با پاسبانان نگارستی استادن نیز بر جای که نه دستش همی جنبید و نه پای اینان رخش را برتافت ناچار هم از جنگشت نومید و هم از یار همین شد در میان برف چون کوه فزون از کوه او را بردرندو همین گفت ای دلندیش چه داری اگر دیدی زیار خیش خاری به اشغاندر چنین بسیار باشد تن عاشق همیشه خار باشد اگر زین روزتاید گاری، مکن زین پس بتان را خواستاری از این پس هیچ یار و دوست مگزین به داغ این پسین معشوق بنشین دریغا آن همه امیدواری که شد ناچیز چون باد گذاری دریغا آن همه رنج و تکاپوی که در میدان به سر برده نشد گوی وقتی ویس در خشم شد و چهره از رامین پنهان ساخت خیشتن را نکوهش ها کرد و سرانجام پشیمان گشت دایه را به جستجوی رامین فرستاد خود نیز در پس او روانه شد چو رامین باز گشت از ویس نومید ز هر دو گشت پلیس نومید پشیمون گشت ویس از کرده خیش دل نالاش گشت آزرده خیش همی گفت آه از این وارونه بختم تو گویی شاخ مهنت را درختم. کنون آتش جانم که نشاند کنون خود کرده را در من که داند به دایه گفت دایه خیز و منشین نمونه کار خسته جان من بین مرا آمد به در بخت وفاگر به زورش بازگردانیدم از در الا ای دایه همچون باد بشتاب نگار این دل برم را زود دریاب انان بارش گیر و فرود آر بگو ای رفت از پیشم به آزار نباشد هیچ کامی بی نهیبی، نباشد هیچ عشقی بی عطیبی. به جانندر امید و آز باشد به عشقندر اتاب و ناز باشد تا آزرده شدی از من به گفتار من آزرده شدم از تو بکردار بدار ایدای او را تا من آیم که پوزش آن چه باید من نمایم بشد دای سبک چون مرق پران نه از بادش زیان و نه از باران دلی باشد نا شکیبا نه از سرما بترسد نه گرما به رهبر برف را گل برگ پنداشت به رامین در رسیدو را فرو داشت سمنبرویس چون سروی گرازان تنه چون برفشان در برف تازان فروغ آفتاب آمد زرویش نصیم نوبهار آمد زبویش خجل شد برف از اندام سیمین همیدون باد از آن زلفین مشکین نچون اندام او بود برف زیبا نچون زلفین او بود باد بویا تا گفتی هور بی فرمان رزوان ز از بهشت آمد به کیهان بدان تا جان رامین را رهاند ز بخت او را به کام دل رساند چو آمد پیش او شد کش و نازان به دو گفت ای چراغ سرفرازان همه کس کام و خویش خواهد اگر چه بیش دارد بیش خواهد دلت را گر جفای من هزین کرد جفای تو دلم را همچنین کرد چون اطفانی ملامت ها کشیدن نبایستی به جز نیکی گزیدن. چونین نازک ما باش ای شیر مردان چون از ما انان را بر مگردان مشا دلتنگ بر من که سزا نیست به هر حالی گناه تو مرا نیست تو داور باش و پیدا کن گناهم که پوزش می ندانم از چه خواهم جوابی داد رامین دلازار چنان چون حال ایشان را سزاوار نگاه را هرچه تو کردی بدیدم همیدون هرچه تو گفتی شنیدم تو را دلسیر گشت از مهربانی چرا چندین مرا بد مهر خانی گنه را پوزش بسیار کردم هزاران لابه و زنهار کردم نه از خوشی یکی گفتار بودت نه از خوبی یکی کردار بودد مبادا کس که او مهر تو ورزد کجا مهر تو یک ذره نیرزد سپاس کردگار دادگر باد که جانم راز بند مهر بگشاد شوم دیگر نورزم مهر با کس گل گلبوی زینگیتی مرا بس